حکایت. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و عذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزان توهی ماند و دشمنان زور آوردند هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد گودر ایام سلامت به جوان مردی کوش بنده حلق بگوشر ننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شود حلق بگوش باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت زحاک و عهد فریدون وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستند که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد گفت آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. گفت ای ملک چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری همان به که لشکر به جان پرورید. که سلطان به لشکر کند سروری ملک گفت موجب گرد آمدن صفا و رعیت چه باشد گفت پادشاه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هردو نیست نکند جور پیش سلطانی که نیاید گرگ شوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکند. ملک را پند وزیر ناسه موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. وسی بر نیامد، که بنی ام سلطان به منازعت خواستند و ملک پدر خواستند، قومی که از دست تطاول او به جان آمد بودند و پریشان شده، بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند، تا ملک از تصرف این به رفت و بر آنون مقرر شد، پادشاهی کو دارد ستم بر زیر دست، دوستارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصمی میمن نشین زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است.